صلى على فاطمة و أبيها وبالها وبنيها السر فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مباسية تب المعصومين بحث طبیعی بودیم الخلون که بیش از چهار هزار بار در روایات شیعه این واجه اومده یکی از فوائد استفاده از سرکه طبیعی علاوه بر استحکام استخونها درمان بی اشتهایی بی اشتهایی اقصامی داره گاهی بی فقر رویه که پزشکی جدید قرص روی به مریض ها میده گاهی بی اشتهایی بی اشتهایی یعنی شخص مواد نشاستهی میخوره اما میوجات و سبزیجات نمیخوره مثل برنج، ماکارونی، سیب زمینی، کوکو سیب زمینی می‌خوره اما باهاش میوه‌جات و سبزیجات نمی‌خوره. مثلا پرتقال شیرین بخوره یا کاهو بدون سس بخوره یا سبزی خوردن که تره و جعفری و مانند اونها هست مثلا بخوره با غذا این کارا نمی‌کنه. حالا بچه یا خودش دوچاره بی اشتهایی التهابی میشه. قسم سوم بی اشتهایی بی اشتهایی عصبی خب در بی اشتهایی عصبی باید رفتار افراد با زیر مجموعه یا همکارا یا اعضای خانواده رفتارشون نسبت به هم باید رفتارهای مثبت باشه روابط عمومیشون باید سالم باشه نکته سنجی بیجا و نقنق زدن و توقعات و انتظارات بیجا نباید از همدیگه داشته باشن یعنی به مقدار توان و ظرفیت و استعداد هر فرد باید ازش توقع داشته باشی یعنی از خدا خداتر نباش لا یکلف الله نفسا الا وصحا به مقدار ظرفیت هر فردی ازش توقع داشته باش گاهی میشه مؤمنم چنین بی اشتهائی در کودکان است و از نظر روانشناسی بالینی مثلا روش های مقابله با بیاشتهایی در کودکان یک پدر و مادر خودشون مناسب غذا بخورن، بدخوری نکنن، پرخوری نکنن، پفتلخوری نکنن، بینظم غذا نخورن. خود رفتارهای مثبت پدر و مادرها عملا به نوع عملی با اولادشون یاد میده چگونه غذا خوردن رو در چه زمان یا یاریز مقضی مصرف کردن دوم زمان بندی مناسب پدر و مادر داشته باشن برای غذایی که او بچه تعیین میکنن تو سبد خانوار مثلا برای بچه قضا خوردنش نیم ساعت وقت بگذنن سود سفره رو جمع نکنم غذای بچه رو تو سینی بگذرن باش برای قضا خودن بچه نیم ساعت وقت بگذرن بچهی که در سن رشته و رشتهش هم سریعه علاوه بر شیر مادر از شیش به بعد و غذای کمکی و ریز مغزی مصرف میکنه هر دو ساعت هر دو ساعت یک بار بعضی کتاب ها میگوین هر سه ساعت یک بار باید ریزم و قضی تو غذای این بچه بگذارید. پس تتون و پشت سر هم به بچه غذا بچه پوده میکنه ترشا میکنه دل درد می گیره. پسا فاملی نارسایی گوارشی میاره. پس بندی مناسب برای غذای کمکی به بچه راعایت بشه بچه غذاایی کمکی که میخوره اگر باید نیم ساعت وقت بهش فرصت بیم. هر دو ساعت یک بار رزمقزیم این بچ مثلا آب پرتقال شیرین خیلی کم آب لیمو شیرین خیلی کم نمی‌دونم غذای رزمقزیم مثلا یک نعلبکی سوپ مثلا یک نعلبکی حلیم گندم گوش، مثلا یک نعلبکی مثلا آب گوشت کم چربه. کم ادویه یا بی ادویه فصاحت فهمید؟ هر کدوم یک ریزم قضی یا غذای کامله برای بچه ولی با تأخیر زمانی دو ساعت دو ساعت یا سه ساعت سه ساعت خب مطلب سوم پدر های عزیز در داخل و خارج کشور نباید به بچه هاشون حل حوله بدن مثلا پفک و چیپس و نوشمک و یخمک و بستنی کفی و اسمارتیز و های مختلف در داخل و خارج کشور. این حل هوله ها یا شیمیایی که هفتاد نو ام هست تا بیماری میاره یکی از بیماری هاش بی در کودکان میاره بفهم پس این حل رو نباید به بچه بده که بچهش بی اشتهایی مبتلا بشه و دچار سوء تغذیه بشه و منحنی رشد قدی بچه کند بشه تصالف آمودی مومنان و ذریع به زعف عمومیش زیاد بشه این هم یه مطلب همچنین باید به بچه آموزش داد. از همون کودکی حتی زیر سن دبستان تو مراحل آمادگی چقدر تو شیه داریم تو کتاب و نکاح و سالشیه جلد 14 چاپ اسلامی تهران یه مثلا این بچه که سه ساله شد مثلا این ذکر لا اله الا الله یادش بده این چند ساله شد صلوات کامله یادش بده اللهم صلی على محمد و آل محمد یادش بده صلوات به حضرت زعرا که به صورت حکم عام اومده اللهم صلی على فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فيها عدد ما احاطا بیه علمک مثلا اینی بهش یاد بده یک کم که گذشت این سر مستوده ظاهرش شهادت محسن ابن علی علیه السلامه که قبر متحرش چارچوب در خانه حضرت زهرست در اینجا جا درف شده اما باطن این سر مستوده چیه مولا صاحب زمانه که نسل نهم از نسل امام حسین از قبل به بچه دشمن شناسی و دوست شناسی رو یاد بده که بچه جاهلانه تکری وارد آمادگی یا درستان نشه آموزش های صحیح خانوادگی و تربیت روش یافته اسلامی که عملی که از بچه من و شما سر میزنه روح آگاهی باشه نه حساب احتمالاتی و کپی رایت از فامیل و غیر فامیل لذا این رفتارهای پرخطر که از کودکان نوجوانان جوانان میان سالان کوهن سالان سر میزنند. مثل چی؟ می از مثلا خشونت های بیجا لجام گسیختگی ها بی و باری ها ولنگاری ها فحاشیها، ها بی تربیتی ها بی ها منکرات جرم دوستان ناباد شبنشینی های مبتزل خودآزاری، دیگرآزاری، آسیب رسانی فردی و اجتماعی بینظمی نظمی در نظم فردی و اجتماعی اختلال در نظام فسق و فجور به صورت مخفی یا علنی انواع اعتیادها به دخانیات به مواد افیونی به قرصهای روان برگردان همجور تا منفی بینایت آرفی این رفتار پرخطر رو چرا گاهی کودکان از دختر و پسر حتی در حالت آمادگی ازشون سر میزنه یا نوجوانان و جوانان یا میان سالان و که بخاطر اینکه قبلش آموزش صحیح نیده یک مربی تذکر به جا و به موقع نداده. بچه اول از روی جهل و قفلت انجام میده و سپس عادت بزشتی پیدا میکنه و این جو یا فحش رو تکرار میکنه. پس آموزش به موقع ها و به جا طبق فرمایش امام صادق علیه السلام با اولادکم قبل از اینکه مرجعه گروه گمراهان فرزندان من و شما رو از راه بدر کنن یعنی باید حالتت حالت اقدام به موقع باشه با شتاب لازم با بازدهی و راندمان مفید تا ذریب دهرهوری از نسل معاصر و نسل بعدی چه نسل خودت چه نسل مردم در داخل خارج کشور بهروری صحیح انسانی به نوع ارزشی. یعنی افراد همه عالما همه جیدا خوب همه احیاگر سنت رسول الله همه دارای رفتارهای مثبت، همه دارای اخلاق حسنه این دنیا و این زندگی همه میشه بهشت فی عیشت راضیه. چون سعی و تلاش مستمره در مسیر خوبی بوده در مسیر صلات مستقیم بوده حالا این همه توضیح دادم اینا مقدمه بودم. پس اگر شادابی فردی یا اجتماعی میخوای، باید به فامیل و غیر فامیل فرزندان خودت و دیگران گوشی زد کنی که اسباب واقعی و مقتزیات واقعی شادابی و ترابت طبیعی چیه؟ یکیش اینه که رفتارهای پرخطر تو جامعه خانه و خانواده و جامعه بزرگتر نباشه. حالا بحثهای شکمی و دستگاه گوارشی و فیزیولوژی یکی دیگه, دیگه از چیزهایی که شادابی و تراوته طبیعی میاره مصرف زعفران با عسل و آب شادابی و تراوته طبیعی میاره یکی دیگه, دیگه از چیزهایی که شادابی و تراوته طبیعی چی میاره چیه مباحث خودونه میگیم سرکه طبیعی انگور اسکری صبح ناشتا اینو رقیقش کنی توی یه لیوان آب یکی از فوائدشی مهمنا شادابی و ترابط طبیعی میآورد. هر کسی که بعضی از سردردهایی داره که منشأش عصبیه یا خودخوریه یا دلشوره است یا دلواپسی یا استراب و دلوره و مانند اینه هیجانات کازه میتونه با کمپرس محلول آبسرکه آب سرکه که روی پوش اونیش پشت گردنش روی سرش میگذاره هر یه مدتی این دستمال مرتوب به محلول و آب سرکه رو عوض کن چلی این که ناشی هست هیجانات عصبی و منشه عصبی داره مهمنه چی میشه؟ التیام پیدا کن یه مسکن طبیعی هر وقت بر حسب تجربه احساس کردید ممکن است دوچار سردرد شوید پیشانی شقیقه ها و پشت گردنتان را بارها با سرکه سیب خالص کمپرس کنید کسانی که کیپ بینی دارند یا پولیپ بینی دارن یا خلط اضافی پشت حق دارن و از کمبود اکسیژن دوچار استرس میشه چون احساس خطگی میکنه، خیال میکنه ناراحتی قلبی داره یا بیماری آس یا برونشیت داره یا امفیزمه ریه داره یا مثلا مقدمه سیروز ریه یا سرطان ریه علکی استرس میگیرتش با اینکه عامل واقعی بیماری نیست. کیفیت بینی اکسیژن کم میرسه حالا با بخور سرکه راه‌های هوایی ریه رو باز نگه داره اکسیژن دریافتیش به مقدار لازم میشه این پس لرزای بعدیش که الکی ترسیده الکی استرس گرفتش و الکی مسترب شد این همه زمین میره خلاص فهمیدید بخور سرکه از راه بینی استنشاق کنید ولی چشماتون هم ببندید بیشتر از پنگه غم بخور رو با بینی نفس نکشین. بعدش مومن مدتی در آرامش باشین. تقلا نکنید. این سرکه اینم قابلامه کوچک به اندازه مساوی. مثلا یه استکان سرکه هست. یه آب به اندازه مساوی. که این قابلامه یا دستگاه بخور میریسید. مخلوط مساوی. چنین بخوری گفت کسایی که عادت دارن که شبها شامدیر میخورن خب اینا قالبن ترشا میکنن، تخمه میکنن، توده میکنن تخمیر اضافی تو میشه، میشه دوچار دلدرد و یا روده درد میشن قلنج میگیرن یکی از نوشابه های طبیعی برای این افراد چیه؟ محلول آب کسی که طبق عادت بدش در ساعت پایانی شب شام میخوره باید بعد از غذا نشابه سرکه سیب بخور یعنی سرکه سیب طبیعی رقیق شده با آب تو قاشق چای خوری یا یه قشق بخوری سرکه سیب در یه لیوان آب هم بزنه بخوره کم کم سرکه سیب به این سبکی که توضیح دادم. و به گوارش کمک میکنه و جلوه عمل تخمیر و عفونی شدن روده ها رو میگیره. اگر کسی خانومش یا خانوم و ناموس دیگران یا دختر و عروس دیگران اومده پیششون شکایت میکنه و دنبال یک متخصص بیماری های زنان میگرده که متخصص متعهده. حالا حضرت خانم دکترم است. حالا فعلا اورژانسی. قبل اینکه برسه به خانم دکتر متخصص متعهد حالا اینجا چیکار کنیم؟ اگر خونریزی شدید داشته باشه عادت ماهیانه این زن موارد مختلفی است که حاشیه زن. یکیش مباحث خودمونه که آخر میگم. پس اگر دوران قاعدگی یک زنی شدید باشه خونریزی به اصطلاح روایات نزف و دم زنبوری. خون ریزی زیاد باشه. به اصطلاح علم جدید بیماری من و داشته باشه. دوچار کمخونی شدید میشه. دوچار زرف عمومی. رنگ پریدگی سستی زانو. درد زانو ناشی از کمخونی. بیحاصله. زود اکوره در میره. نقطه سنجی بیجا و دوچار افسوردیگه میشه. حالا جلو خونریزی زیاده این زن رو بگیرید یاددش بفرمایید. یک بال بحث شیمی درمانی قرص شیمیایی ترنسید ده عدد روزی یک عدد و نهار. از قبل از قاهدگیش تا بعد از قاهد دیگیش پس قاهدگیش سه روز تع روز هفت روز. حالا از قبل از فایدی تا بعد از فایدی هر روز وسط نهار یک عدد قرص شیمیایی ترنسید یه تاموش یه بار داروهای گیاهی می‌خویم مثلا سیب زمینی رو ورق ورقه ورقه کنه برشته کنه تو روغن زیتون یه مش وسط روز یه مش عصرونه بخوریم خونریزی شدید رحمیش قطع میشه سوم جوشانده یا دم کرده گیاه رازک یا رزک باز زنبوری خونریزی شدید رحمی قط میشه حتی اگر فیبرام رحم داشته باشه و زخامت فیبرامش زیاد باشه و تخصصی بیماری های زنان بگن بیا عمل کن میتونه قبل از عمل یا با حس عمل این خونگیزی رو قط کن با جوشانده یا دم کرده یا گیاه رازک چهارم به یا آب به یا مربای به خیلی فواهد داره از جمله تقویت قلب که امیر المومنین علی علیه السلام فرمود: اکل سفر جلیقه بی قلب وعیف از جمله پیشگیری میکنه و درمان میکنه خونریزیهای های داخلی را. دکتر محمد صادق روچهان کتاب میوه درمانی. مطلب پنجم برگ مو، برگ درخت انگور یا دلمه برگ درخت انگور با رب انار شیرین درست کن. اینم پیشگیری میکنه اینم درمان میکنه خون های داخلی شیشم هندوانه هنزل یا خربوزه معاویه یا هندوانه ابو جهل سمیه. اما طبق دوزج خاص زیر نظر متخصص گیاهی اگر شخصی مصرف کنه هم خونش میاد پایین اگر دیابتی باشه هم خونش میاد پایین هم پانکراس لوزالمعدهش فعال میشه تو ترشح انسولین هم پیشگیری و درمان خونریزی داخلی میکنه یکی از عوارض دیابت در نوسان قند خون بالا چیه خونریزی پشت کره چشم که شخص دیابتی دیدش تار میشه شما به عنوان پیشگیری طبیعی ها یا درمان طبیعی از خونریزی پشت کره چشم که این متخصص قرنیه یا فوق تخصص شبکیه با لیزر میسوزن این لخته ها رو. با این لیزر دو بار سه بار تکرار میشه در طول زمان حالا اینجا این داروی طبیعی پیشگیری میکنه و درمان میکنه خونریزی داخلی ها اما زین یه متخصصی چی عمو جان گیاه شناس که در 24 ساعت یک گرم تا دو گرم مؤمنا پودر هندوانه حنزق رو در نصف استکان آب جوشه هم میزنه میخورم مثلا به هفتم مواسه خودمونه. که از تو کتاب میخوام بیام اینا حواشی میگفتن حالا از تو کتاب اگر کسی خون شدید داشته باشه در دوران قاعدگیش نوشیدنه یک لیوان شربت نوشابه اصل و سرکه مثلا یه قاشون مربخوری اصل زده تو لیوان یک قاشق مربخوری هم سرخالی سرکه سیب زده تو لیوان آب هم ریخته روشون. هم میزنه میخوره. اگر صبح ناشتا بخورم تصالب فهم بودیم؟ از بیشتر. خونریزی شدید عادت ماهیانش قطع میشه. حیزش قطع نمیشه. خونریزی شدید عادت ماهیانه. یعنی بیماری منراجیش قطع میشه. ما این جانا چیکار کردیم؟ به اسطلاح خودمون تو فقه. قاعده فقه. میگیم دفع افسد به فاسد کردیم. اصل رو با سرکه فاسد کردیم مخلوط با آب با این فاسد دفعه افسد کردیم که خونریزی شدید هنگام قاعدیگیه خب تصور شد خب این هم حواشی ما بر این مومن اگر کسی هر ماه این خونریزی شدید رو داره باید چهار روز قبل از این که این خانم قاعده بشه پریاد ساعت بیولوژیک بشه حیز بشه عادت ماهیانه بشه از چهار روز قبل اینجا باید از سرکه سیب پرهیز کنه این بحث ما کی بود؟ تو هنگام قاعدی که خونریزی شدیده اگر نه از چهار روز قبل باید اشتناب کنه اینم تجربیات افراد خارج و داخل کشور حالا اثر بخشیه اصل رقیق شده با سرکه و آب چیه کم شدن خون ریزی و همچنین انعقاد کننده خون به طور طبیعی یه بار انعقاد کننده خون تو بحث ویتامین ویتامینها هست مثل ویتامین B1 مثل ویتامین K اگر شخصی ویتامین B1ش خیلی کم خود به خود که بینی خون ریزی بینی کم یا اگر ویتامین کاش کم بشه هم خون ریزی ها خود به خود از بینی از چشم از گوش از دندون لس ها خود به خود چون ویتامین کاش کم اینجا مغز بادوم شیرین مومن ها. یکی هم لیمون شیرین ویتامین b بی 1 رو بلاب یا ویتامین B1 بی 15 عدد روزی یک عدد بخواده شیمیایی اگر ویتامین کاش کمه، آمپوله. چند میلی گرمی؟ سه ایلا 5 میلی گرمی. یکی این هفته میزنه یکی هفته دیگه. زیر نظر متخصص. عوامل انعقادی خونش موامل از این حیث چی میشه؟ موامل از حیث ویتامین که. رو برام میشه. یا اینکه 5 قرص ویتامین کا در 5 روز. روزی یک عدد میخواه. اما یه بار دیگه هست نه. این خون ریزیای داخلی یا بیرونی، به خاطر فقر ویتامین بی 1 یا فقر ویتامین که نیست بلکه به خاطر کمبودم عوامل انعقادی خونه کمبود پلاکت های خونه حالا اینجا چگاه کنیم؟ که این پلاکت های خونش بیاد بالا و اگر جایی از بدنش زخم شد و تسلاب شراین در رکد شد خون داخلی و یا خونریزی بیرونی نکنه تخمه یونجه به اضافه سیاه دونه به نسبت مساوی یه قاشق چای خوری از این یه قاشق چای خوری از این دو دوتشو مخلوط کن این قشنگ به جوه قرط بده اگر بعدش میاد یک کم تلخمزست میتونه با اصل گرم بخوره آبیشن نعنام پلا کتای خونش کم کم میاد بالا عوامل انعقادی خونش میاد بالا این هم حواشیه که برای این کتاب زدیم تو بحث خستگی چشم، تو بحث گرفتگی ازالات میتونه دستمال مرتوب کنه مومنان چشماش ببنده بذاره بعد یه مدتی که دستمال برداش پلکای چشمش رو زیرا آب بشوره تو بحث گرفتگی ازالات، اسپاسم و میتونه این دستمال یا شال رو مرتوب کنه به محلول سرک مومنان بعد ببنده یه دو ساعتی که بود بعد باز کنه اسپاسمای ازولانی از این میره. کسایی که کشیدگی ازولات دارن در اثر ورزش های کششی. مثلا ژیمناستیک مثلا دارحلقه، مثلا کامفو، مثلا ساواتم. یا نه میخواست سقوط کنم امانا از درخ یا نردونی که دستی گرفته. کشیدگی ازولات شده. یا اینکه مثلا از چهارپایه میخواست بیفته مثلا از درخت پاش یه جای گیر کرده معلق در هوا پاش یه جای گیر کرده یا یه خبیثای مثلا این وریور عالم بودن که از این ملعونها هستن مردم شکنجه حالا این تفلک و مومن ها با دستاش آویزون کردن به صلیب کشیدن یعنی که با پاش آویزون کردن هم شلاقش می‌زنن هم آب بخوردش می‌دن یه آبجوش جوش مومن ها هممون این کشش عضلانیه میشه کشش تاندون میشه، کشش مینیکس پا و مانند اون میشه. حالا تپلنگ نجات پیدا کرد از شر این ظالمین. خدا همه مظلومای عالم رو از شر ظالمین نجات بده. حالا اینجا کشیدگی عضلاتش رو با کمپرس محلول آب سرکه می‌تونی درمان کنی. ولی ماساژ نرم می‌خواد، تصاور فهمیدین؟ همان طول درمان داره. چون ازیت آزار طول کشیده طول درمان داره. همیشه اگر کسی میخواد ورزش های سنگین کنه حتما باید به مدت 20 دقیقه نرمش های لازم رو داشته باشیم. از صف شروع نکنه ورزش سنگین کنه. به عضلات و تاندونا و مینکسا و اینها همه آسیب میزند، به مفصال هم آسیب میزن. این هم دیگه بحث های تخصیصی ورزش. اگر کسی مومن ها خوندماق میشه تونتون. خب بخوایم خون دماغش کم کنیم از طریق استنشاق مثلا یا از طریق قطره چکاندن عساره یا خود له شده یه تره تو بینی بذار یکم بینی نگرده خونریزی بینی قطع میشه عساره چی جعفری تو بینی بچکونه یه قطره دو قطره خونریزی قطع میشه اگر مناطق حاره است و شرجی مثل شبه قاره هند همانندی اونایی که به خط استوا نزدیکن هرجای کله زمین اینجا مؤمنان با قطع چکون عساره سفن یه قطره یه قطره یا اینکه بخور سفن هم آبریزش بینی قطع میشه هم خونریزی از بینی متوقف میشه یکی دیگه چیه مبا استفاده بخور سرکه طبیعی بخور سرکه طبیعی چه سرکه انگور ازگری چه سرکه سیب کسانی که تیکای عصبی دارن یا پرش مفصلی دارن اونها هم میتونن مؤمنا استفاده کنن حالا این تیکای عصبی بعضی ها تو پلک چشت دارن هی تون پلکاشون به هم میخوره. بعضی ها تو زبان بعضی ها تو لب بعضی ها تو دست اینجوری به دستش بی اختیاری میشه یا پاش پرش داره بی اختیار ها انواع تیک های عصبی داره اون موضعی که تیک عصبی داره ها میتونه اون رو ماساژ بده با محلول آب سرک مساج ملایه میتونه خوراکی هم بخوره یک دوم لیوان آب میوه گریب فروت یعنی سرخ یعنی دارابی یا یک دومه لیوان آب پرتغال یه قاشق چای خوری هم سرکی سیب طبیعی اضافه کنه اونی که فشار هم داره و تیک عصبی اونجا گریب فرود میزنه نصف لیوان اونی که خون نداره ولی ویتامین سهش کمه اونجا نصف لیوان آب پرتغال میزنیم اون دوتا دیگه هم که مثل همه نصف لیوان آب این یکیش هم چی بود؟ یه قاشق چای خوری سرکه طبیعی استی استطالقاتی هم میکنه هر روز قبل از ظهر این یک لیوان رو میخوره تیک عصبیش مومنه چی میشه؟ امو خوب میشه چرا؟ چون جبران کمبود املاح و ویتامین ها میشه چون بعضی از این تیک های عصبی به خاطر کمبود املاح یا ویتامین هاست بعضیاش مربوط میشه به های عصبی آه. که پشت پشت گردن قسمت بسلان نخوا یا مخجه است تصالب بودیم؟ اون چیزایی دیگه است کسانی که مؤمن گوششون سنگین میشه یا واکس گوششون زیاده یا آفونت گوش داخلی دارن بخور محلول سرکی خوبه بله آدم گوش در باید به متخصص گوش حلق و بینی مراجعه کنه اما از باب اقدامات ارجانسی فوریت های پزشکی ارجانسی خانواده تا قبل از که مشخص بشه منشأ بیماری چیه تا به دکتر متخصص هم قسمت بره میتونه استفاده از بخور برای گوش کنه یعنی یک فنجان سرکه سیبرو با دو فنجان آب قاطی میکنه، گرم میکنه سپس گوش خودش رو بالای این قابلامه نگه میداره تا بخارش به گوش برسه باید مواظب باشه که بخار خیلی داغ نباشه که لاله گوش و مجرای گوش رو نسزونه بخار عادی یعنی میگیم دمای پنجاه درجه چل درجه گوش دردهای ناشی از التهاب یا سرمخوردگی رو نیز میتوان با بخور سرکه طبیعی است. همین تیپی که گفتم مداوا و معالجه کرد گرچه در ابتدا یک مسکن طبیعی برای گوش درده گایی <تصفيق> بعضیا سر و صدای گوش دارم یا سوت سر دارم برای شناگرانی که اغلب از درد گوش رنج میبرم تمیز کردن گوش اهمیت دارد می توانید از محلول دو قسمت آب جوشیده و یک قسمت سرکه استفاده کنید مثلا این استقانه یک سرکه طبیعی مثلا سی دو سومش هم آب اینو هم میزنید با این محلول گوشت تمیز کنید هم واکس گوشت راحتی در میاد هم زد باکتریه دیگه نمیخواد. پماده چشمی تتراسیکلی یک درصد مثلا با گوش پاک کن یا مثلا پنده تمیز مثلا تو گوشتو زده و فونی مثلا. که خالش نداشته باشه چک نکنه خون ریزی نکنه میتونی با این محلول آب سرکی مومن داخل گوشت رو تمیز کنید هیچ وقت واکس گوشو خشک نکن چون دایی چسبیده زخم میشه مجرای گوش خود زخم شدن یه محل آماده است برای باکتری شدن این قسمت بعضی دکتران که خوش میکنن اشتباه کن میکن. مریض تا چند روزگاهی گوشش در میکن. بله اگر هیچی در دسترس نبود قراح که تو روایت قراح قصر الف حجمی طماء القراح یعنی با آب مطلق تمیز آب مطلق آب بهداشتی سالم مثل آب آشامیدنی سالم یا آب معدنیای سالم میتونی با همین آبم هم گوشتو شستشو بدی که واکسای اضافی گوشو در میتونی با آب مقطرم شستشو بدید که بعضی از دکترای محترم این کار میکنن حالا شما که این کارو انجام میدین با این مخلوط محلول که سرکه طبیعی سیب هست و آب هست چیکار میکنین اینجا مؤمنا مجرای گوش تمیز فشار اضافی رو پرده سماخ نمیاد حالا اگر از این محلول بخوریم از این محلول آب سرکه هم بخوریم اگر با هر وعده قضایی بخوریم سر و صدای اضافی گوش هم کم میشه کم کم هم بمیره چقدر تو روایات شیه داریم اول و آخر غذا نوک قاشق چای خوری به استلاح ما مسمل خل سرکه طبیعی بخور خیلی فواید داره یکی سرسده های اضافی تو گوش و سوت سر کمک به درمان این ها میکنه و اینا کم میشه چون گاهی اینا به خاطر قند نوسانیه گایی به خاطر چربی خونه بالاست بعضی هاش عاملش بخ... عامل آلودگی صوتیه. بعضی هاش آملش آمل افونت گوش داخلیه که اونجا اگر افونت گوش داخلی بودن که گفتیم محلول آف سرکه و همچنین گفتیم روغن بنفشه خالص بر پایه روغن سیاه دونه که افونتاره بکشی بیرون بدون این که آموکسیسیلین و آموکسیقلا و بخورن. بخوره این رو قبلا تزکد کسانی که بیماری های روماتیسمی و نقرسی دارن چه روماتیسم مفسری چه روماتیسم قلبی و همچنین نقرس دارن بیماری MSU دارن رو صوبه اسید اوریک که خون به صورت کریستال دارن این اینها میتونن مختصری سرکه طبیعی تو جیره قضایشی موشه کلن تو 24 ساعت میشه چهار قاشق چای خوری هر دو قاشق چای خوری تو یک لیوان آب آشامدینی سالم هم بزنه یه آواش آواش بخور وسط روز اصرونه شب قبل خواب یا صبح زود قبل اینکه سر کار میتونه این دو لیبان رو بخوره به این سبکی که توضیح دادن دردهای های کم میشه چون کاهش اسید اوریک خون میشه و کلیه ها فعال میشه که قبلا تازی بود. های مضر خون کلسترول بعد ال میاد پایین. یه عامل سردات کلسترول بده. یه عامل تسالده به شریان کلسترول که بده که بالاست. همین ادامه اعدامه بده. این اینا هم میاد پایین. درد مفاصل وران مفاصلش ناشی از رسول اسید اوریک خون کاره. دردای روماتیسمی که از مفصد تو مغز قلم و استخوانه روماتیسم مفصلی که های در ناحیه فضای دهان پشت زبانه قسمت لوزا که ها نریخ بیرون. قورتش داد بعد دو روماتیسم قلبی میشه پنسلین تزریقی هم که نذر توش مؤمنات حالا اینجا اگر با محلول آب سرکه فضای دهن و و لوزاشو تمیز کنه بریزه بیرون. بعدم تو 24 ساعت دو لیوان محلول چی بخورم؟ آب سرکه تو هر کدوم یه قاشو مرب بخوریم سرکه سیب میریزیم مومنه با یه لیوان آب هم میزنیم؟ میخوریم. اینجا دردهای روماتیسمی مفصلی و قلبی مومنه کاهش پیدا میکنه کم کم بین میره داروهای دیگه هم هست مثلا روغن بنفشی خالص در پای روغن زیتون روغن زیتون خوراکی یا روغن بنفشه خالص که بنفشه طبیعی کوهیه در پایه روغن بادام شیرین اینو میتونی هم بخوری هم محل درد روماتیسمی و ماساژ بدید به صورت پماد زومات اینجا تو روایات شیعه داریم دیگه که پیغمبر رحمت به امین ال مؤمنین علیه علی السلام فرمود لو علمن ناس ما فی دهن البنفسج تحسوه حسوا علاوه این جرعه جرعه می نوشیدن از بس فواید داره یکی از داروهای قویه درمان و پیشگیری از انواع روماتیسم هست یکیش قلبیه یکیش روماتیسم مقصدی خب نمیگذاره رسوبات در خون تهنشین کنه به استضای قدیمی ها به اصطلاح جدیدی ها مانع از رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل میشه بفهمم کسانی که بیخابی های مکرد دارن و خستگی های مزمن کوفتگی بیحوصلگی بدنش خیال میکنه همیشه خورد و خمیره با اینکه کار زیادی انجام نده مثل چی علکی خستگی نمیگم خستگی مزمن حالا اینجا مؤمن در هنگام بروز خستگی های مزمن توصیه شده است که تا حد امکان شیرینی های طبیعی و فرآورده های شرینی های شیمیایی مثل قند و شکر و شنجات قدادیم و, و فرآورده های آرد سفید که که سفید نون سفید نون ساندویچ نه نخورید. یا کمتر مصرف کنید. در عوض چیکار کن؟ قند طبیعی مثل اصل با شیر کمچر به صبح. می انگور یک شاداب کننده و ترابت بخشه مفرلحه تونیک. تونیک میتونه اصلانه یه لیوان آب انگول بخورد شب میتونه یه دونه سیب بخوره. یک ریزم قضیه یه واحد خوراک. زحف هم داره میتونه آبشه بگیره یه اسکان بخوره. زحف همومی شدیده میتونه با اصل بخورد برسون مومنم بعد همراه جیره قضاییتون در هفته سبزیجات، میوه‌جات، جات، خوراکی مثل کرفس، مثل کاهو بدون سوس، مثل جعفری، مثل تره، مثل ترخون تو جیر قضاییتون باشه انواع میوه های فیبردار، فایبر مثل فرس پرتقال شیرین، مثل لیمو شیرین، اونی که فشاخون هم داره مثل گریب فروت من ماننده اینا میتونی چیکار کنه؟ بخوره یا اینکه سبوس گندم، جو، شلتوک برنج اینا خلاصه اینا به همراه غذاشون تو هفته بخورن. ماهی هم در هفته میتونه بخورن اما یک الی دو بار بدون پوست. بعد از ماهی خوردن گفتیم روایات اهل بیت چی میگه عمو خرما یا عسل بخوریم تا بدن لمس نشه اینه قبلا گفتم. حالا دارم بحث خستگی مزمه نمی کن. شیمیایی هست کنه. اسانسای شیمیایی هست کنه. قضاهای چرب و چلیس رو هست کنه. نزیر سخ گردن یا تفت دادنی. بعد یک هفته. فیبرهای گیاهی و و میوه‌جات رسیده شیره. و همچنین مومن سبزیجات مفید. مثل تره، مثل جعفری، مثل تره خون. مثلا از اینا بخوره مومن ها به همراه قضاش بعد از قضاش هم میتونه سیب بخوره میتونه خورما بخوره میتونه یه انار شیرین بخوره میتونه یه قاچ خربوزه بخوره خب خستیگاه مزمن هم خوب میشه اگر سالاد گوجه فرنگی خیارتو یا سالاد کاوتو یه مختصری روش سرکه بریزی مثلا یه قاشو مربخایی روش سرکه بریزی این هم کمک میکنه به درمان خستگی های مزمن مواد غذاییتون رو میخواین شیرین کنه چرا قند شیمیایی یا شکر شیمیایی یا خاک قند و اینا انجام میدن که کروم بدنتون کم میشه که دکتر حسین میرحیدر فرموده خارجی هم حتی میگن با این قندهای ساکاروز شیمیایی قضاها رو شیرین نکنید مثل فرس کنید حلبا مثل چلوزه، مثل فرینی مثل حلیم گمدونگوش ما من اینا مثل یکی میخوای شکلات تو خونه درست خود. بلکه اینها رو با شیرینی طبیعی شیرین کنید مثلا اصل طبیعی مثلا شیره خرما، مثلا شیره انگو مثلا شیره توت با اینا شیرین کنید مواد غذایی را به جای شکر و قند با عسل شیرین کنید عسل سرشار از انرژی است و خیلی زود وارد خون شود هر از گاهی یک قاشق عسل هم بخورید قربون ای اسلامه میگه اگر مائ زهره تغییر کرد ای مردایی که زن و می‌خواهید تولید سالم داشته باشیم اینجا تو روایاتش میگه ازا تغیرت و میگه اینجا حلیب العسل اینجا شیر تازه گاب رو با چی بخور؟ با عسل بخور فرمایش معصوم علیه السلام طالب دیگر هم مومنا هست سموم ناشی از باکتری های موزر یا ویروس های موزر تصالب فهم میگه با این عسل رقیق شده این العسل شفاون من کل سمه فهماش امام صادق علیه السلام تو مستدرک محدث نوری جلد شمازه نا اومد میتونم از سرکه سیبم استفاده کنم به عنوان پیشگیری یا دعمان بله که میشه سیرا که خورما چیون پوتاسیوم داره منیزیوم داره آهن داره پوتاسیوم و منیزیوم و آهنم در سرکه سیب هست میتونه آرامش رو به انسان به ارمقان بیاره چون اثر هم آرامش بخشه حالا هر داشت تو جیره قضایی میتونه بذاری اثر رو با صبح با شیرت بخوریم این سرکه رو میتونید تو سالاد گوجه فرنگی خیار یا سالاد کاهود بریزی بدون سس به همراه نهار بخوریم فیبر گیاهی سرشار من یزیوم پتاسیم آهن اینا همه و بدن رو میاد شادابی بهت برمیگرده، خموردگی، کسلی، خستگی مزمنت خوب میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد